خوشنوودی اهورامزدا خداوند جان و خرد خداوند راستین ایرانی اشم و هو و هشتمستی اوش استی. اهو و شتا وستی یا تا اهوروی عطارتوش اشاتچیت هچا راستی بهترین نیکی است خرسندی است تنها میزان گزینش راهبران دین و دنیا راستی و درستی است و میزان پرستاری و خدمت به زندگان مصوبه و پیروزگر باد مینوی مهر ایران درود ما باد بر روان و فروهر همه زنان و مردان نیک و پارسایی که در درازای تاریخ در راه نگاهبانی از ما میهن جان باختند ای یهورا مزدا ببخش به ما خردی بزرگ و پاینده و پس از آن دلیری مردانه استواری هوشیاری خیشکاری، شناسی و بیداری و فرزندان برومند و حشیار نگاهبان کشور انجمنارا، بالیده، نیک کردار رهاننده از سختی که پیشرفت هند خانه ما را، ده ما را شهر ما را کشور ما را و سرفرازی های میهن ما را ای اهورامزدا ای خداوند جان و نگاهبان دلیران میهن باش امروز این مردم آریایی در این سرزمین اهورایی مردمان تنهای تاریخ جهان ایران زمین اهورایی را از چنگال اهریمنیان در پناه خود نگاه دار. به این مردم توانایی که در برابر دیوان و دروغان بیستند و آنان را از خاک بر بیرون برانند. اتا جمعیات یتا آفرینامی چنین باد که ما خواهانیم.